درود به شما شنوندگان گرامی. اینجا توکیو است و صدای ما را از NHK World Japan به زبان فارسی میشنوید. امروز سه‌شنبه 22 فروردین ماه برابر با 11 آوریل، من مهرداد صادق زاده از استودیوی NHK به همراه همکارم محبوبه رجبی تازه ترین خبرها را تقدیم شما می‌کنیم. او اددا کازو و رئیس جدید بانک ژاپن می گوید به سیاست های کورودا ها رئیس قبلی این بانک ادامه خواهد داد و تلاش خواهد کرد تا به تسبیت قیمت ها با تورم دو در دست یابد. او همچنین میگوید که به تسهیلات پولی در مقیاس بزرگ ادامه خواهد داد او ادا که روز یک شنبه به عنوان رئیس جدید این بانک منصوب شد روز دوشنبه یک کنفرانس خبری برگزار کرد او گفت: تا تاکنون بانک ژاپن در اجرای انواع سیاست های پولی غیر متعارف از دیگر کشورهای جهان جلوتر بوده است من میخواهم این فرصت را غنیمت بشمارم تا هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ عملی برای انجام کامل مأموریت دستیابی به ثبات ها تلاش کنم اودا همچنین به سیاست کنترل منهنی سوددهی این بانک که بهره کوتاه مدت را منفی و بهره بلند مدت را در حدود صفر درصد نگه داشته است اشاره کرد. او گفت من فکر می کنم که با توجه به وضعیت اقتصادی، قیمتی و مالی کنونی ادامه دادن به کنترل منهنی سوددهی مناسب است. قبل از این کنفرانس خبری او اواددا با کیدافمی و نخست وزیر ژاپن ملاقات کرد آنها توافق کردند که نیازی به بازنگری فور، ببخشید نیاز به بازنگری فوری بیانیه مشترک سال 2013 که با هدف تورم دو درصدی بود نیست. او یکی از اعضای پیشین هیئت سیاستگذاری بانک ژاپن و اولین رئیس این بانک با تحصیلات دانشگاهی پس از جنگ است. درسای بانک ژاپن و معاونان آنان برای دوره‌های پنج ساله خدمت می‌کنند. ارتش چین با پایان یافتن سه روز گشتزنی و رزمایش نظامی در اطراف تایوان متحد شده است که هر شکلی از استقلال تایوان را در هم بشکند. فرماندهی ناهی نظامی شرقی ارتش آزادی بخش خلق چین روز دوشنبه اعلام کرد که آنها به طور جامع توانایی های سربازان را برای عملیات مشترک در شرایط واقعی جنگی آزمایش کردند. این فرماندهی همچنین افزود که نیروها به خوبی آمادهی جنگ در هر زمان هستند و با قاطعیت تلاش های جدایی طلبان برای استقلال تایوان و مداخله خارجی به هر شکلی را سرکوب خواهند کرد. این های نظامی که از 8 آوریل آغاز شد، اولین ناو هواپیمابر ساخت چین شاندونگ را به نمایش گذاشت. وزارت دفاع تایوان می‌گوید که در مجموع 91 فعالیت توسط هواپیماهای ارتش چین در فاصله زمانی 6 صبح تا 6 بعد از ظهر دوشنبه در اطراف تایوان شناسایی شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین بیشتر اعلام کرد که این عملیات در تلافی دیدار هفته‌ی گذشته بین سای رئیس جمهور تایوان و کوین کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انجام شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید اروپا هیچ علاقه ای به تصریع مسئله تایوان ندارد و باید استراتژی مستقلی از امریکا و چین را دنبال کند. مکرون این اظهارات را در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه توسط روزنامه مالی فرانسوی لزوکو و رسانه های دیگر منتشر شد بیان کرد. او تازه از چین پس از دیدار باشی جیمپینگ رئیس آن کشور بازگشته بود. در این گزارش ها به نقل از مکرون آمده است. بدترین چیز این است که فکر کنیم ما اروپایی در مورد این موضوع باید دنبال رو باشیم. و خود را با ریتم امریکا و یا واکنش بیش از حد چینیها وفق دهیم او گفت که اروپا نباید وارد یک منطق بلوک در مقابل بلوک شود و باید وقت صرف کند تا به عنوان قطب سوم بین امریکا و چین موضع خود را ایجاد کند وی ای افزود اروپا نباید برای دفاع از خود و تأمین انرژیاش به دیگران وابسته باشد سام آلتمن مدیر عامل اوپن ای, ای شرکت نوپای امریکایی که چت جی پی تی را توسعه داده است در حال بازدید از ژاپن است و روز دوشنبه با نخست وزیر کیشیدا فومی و ملاقات کرد پس از این دیدار آلتمن دستور جلسه را با عبارات واضح خلاصه کرد او گفت ما در مورد جنبه مثبت این فناوری و نحوه کاهش جنبه منفی آن صحبت کردیم آلتمن افزود که به دنبال افتتاح دفتری در ژاپن است و گفت که مایل است فناوری عالی را برای مردم ژاپن بسازد و مدل‌های بهتری مطابق با زبان و فرهنگ ژاپنی ارائه دهد. دولت نیز در این فناوری امکانات بلعومی می‌بیند. ماتسونو هیروکازو دبیر اول کابینه گفت که ممکن است برای کاهش بار کار بر روی کارمندان دولت، هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گیرد. اما ماتسونو به خطرات ذاتی در این فناوری جدید نیز اشاره کرد. سام آلتمن طی مصاحبه ویژه‌ای با انشکی گفت که چت جی پی تی، کیفیت زندگی ما را به شیوه هایی که هرگز تصور نمی‌کنیم بهبود خواهد بخشید. او گفت ما می‌خواستیم ابتدا به اینجا بیاییم. ژاپن در کل برای این موج هوش مصنوعی کشوری بسیار جالب توجه بوده است. ژاپن همچنین کشوری است که دارای اهمیت ژئوپلیتیک بالا و بنیادهای دموکراتیکی مستحکم است. آلتمن همچنین گفت که میخواهد مرکز کسب و کار جدیدی در ژاپن تأسیس کند. چت جی پی تی می تواند تولید کند که تقریباً آنقدر طبیعی به نظر می‌رسند که گویی انسان آنها را نوشته است و در ژاپن هم مورد توجه روزافزونی قرار گرفته است. این فناوری هوش مصنوعی بسته به اینکه چگونه مورد استفاده قرار گیرد امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. اما تعدادی از کشورها میگویند نگران آن هستند که چت جی پی تی تأثیری منفی بر تحصیلات داشته باشد و اطلاعات شخصی افراد را در معرض خطراتی قرار دهد آلتمن گفت که بیشتر فناوری‌ها هم جنبه‌های مثبت فوق‌العاده‌ای دارند و هم جنبه‌های منفی قابل توجهی. به باور من این ابزارها خلاقیت ما را تقویت خواهند کرد. او اشاره کرد که با پیشرفت هوش مصنوعی به قوانین و مقررات بیشتری هم نیاز خواهد بود. مقام های سازمان هواشناسی ژاپن میگویند که یک آتشفشان در شبه جزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه فوران کرده است اما این حادثه ژاپن را با تهدید سونامی مواجه نمی کند این ماغوموها میگویند کوه شیوا در ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت جهانی فوران کرد. وقوع یک فوران عظیم در فواصل دور گاهی می تواند منجر به تغییراتی در فشار جوف شود که ممکن است ارتفاع جزرمادر را تغییر دهد، اما این مسئولان میگویند که هیچ گونه تغییرات جزرومدی در سواحل ژاپن مشاهده نکردند. کوه شیوه در بخش شمال شرقی شپ جزیره کامچاتکا واقع شده است. این کوه که 3283 متر ارتفاع دارد، یکی از فعالترین آتشوشانهای این شپ جزیره قلم داد می شود. اینکه سربازان روسیه معتقدند مت... که تصرف باخموت ممکن است راه را برای حمله از طریق شرق اوکراین باز کند. مقامات طرفدار روسیه روز دوشنبه گفتند که کنترل بیش از 75 درصد از شهر را در دست گرفتند، مقامات از اوت گذشته ده هزار نفر را در درگیری ها از دست داده اند اما رئیس این منطقه که روسیه او را رو منسوب کرده از خط مقدم بازدید کرده است. دنیس پوشیلین گفت که طرف آنها بیشتر شهر را کنترل می کند. فرمانده نیروی زمینی اوکراین این داها را به چالش کشیده است. جنرال الکساندر سیرسکی، روزه یک شنبه از این منطقه دیدار کرد و گفت که نیروهای روسیه از های زمین سوخت استفاده می کنند و ها را با حملات هوایی و توپخانه از بین می برند اما اون گفت که وضعیت دشوار ولی قابل کنترل است. پایان پخش اخبار از NHK World Japan از توکیو شنوندگان گرامی شما می‌توانید اخبار کاملتر را در وبسایت ما بخوانید. من مرتاد صادق زاده هستم و برای شما روزی شادی و سرگلندی دارم.